به غری عزیز و خوشویش لوتنلی به خوشحالین لا به 649 خوین چشتی به چشت منجوری حجری مکرانی هاتین ولتان فرمون بو امشویش حوریمان بن لابشی پیشو ده اللو کاته ده بجیمان نشتن که هجار مکریانی دیویست توزیک لسر تختک را بکشو بگرتو توا بو خیالاتی را بردوی بایلن بشه ده لیو او دست پیدکن که هجار مکریانی توزیک خیالی را بردوی دهنه توا برچاوی خویو داله کاته لبکان و حتم سلیمانی حزب پرتی به نوی برزانی سازدره بو، همزه عبدالله لبریکاری بو برایم احمد کایوشوک اویش وک حقوقی خوانده بو, بو بو وکیلی دادگستری تا کاماله امه بو لقی که کاماله لسلیمانی سرپرشتی دکرد. کرد. دویت یک چون من اویش بو, بو بو پارتی. پارتی بو ازادی کردستان لجیر سای شوئیت ده حولی ده, ده. حزب شوئی بو همو دنیا و لباسی کرد و کردستان راضی نبو چون که بنامبر با پیودانی ستالین کرد با ملت حساب ناکره. من هرچان ما گوتم با به المخابر، سوری دو آتش بوم، هزم لپارتی اکرد که باسی کردستان بودکو، دلائه دا به کرد ازاد بیو دولتی کومونیستی دا مزرینه. لململانی دو سروکی پارتی دا هر جاره یک یک سردکو. بلامیش کامیان لناو در ندویجران. لبغدا با جاری دوام هم چوملی همزو ایتر نمدیتوا. دگل شوئان نیوانم خوش بو. پارتی هر دوک براش رک بریا رشمدا بو پش جکف نتمه هیچ حزب اکوا کاتق لکرکوک شاگرد بون یک یک دوست کانم کلا پش ابراهيم همکار بو جری گوتی باندم نوسیو نو فرئد چالک به بلم که هیچ یم به فرمان حزباتی نه ده بی دنجی شراکان بلافو کی پارتیدا چپ دکړن همو هاوکریکم د گل دخردن شویش دیانویست انده منب قبولم نه کړ لای هر دوک الا باپاکو بيترف کی بي غرض مو به وا قازنجم کړد بو جاکه پارتیش خوين به کل کی شوی د زانیو لانواب وک سوفيو درويش هر دوک خوای چې دکن کس ګلی لینا کړدم بو د فلان شوی وستی یان بو شریعت بو پارتینوسی کاری شم او بو که چاوم لپولی کس نبو زحمتی زورم دکیشا با عرقی نوچوانی خوم در جم نا اترسام بلن وانکی معاشکت نگا نوکری بی و برات تانجی سری آغای خویتی لنباره و برحل یک بوم کریبا بی خوم لپاش او زبیهی لسلیمانی دگل حمز عبدالله نیوانی تیک چوبو چوبوالای شویانو لکرکوکا و حتبو بغداو پیکاو در جین روش هتیوی که قوتم لیه پیدا بو بیانی که دامی و نامی کش بیانکه به هزار دلیل اثباتی دکرد که زبیحی جاسوسی انگلیزا نامش دیگو هجر تو نا به دوستیاتی دگل او جاسوسا حقی به بی که حزب کمان کشفی کردوا وتم یعنی تو حزب تان دزانند که برج برز زبیحی لبندیواری سفارتی بارتانی حال دلرزه تا حقوقا که نه ایش وطی نا, نا او تم دب چوب ما مستقبل من جاسوسی نازانم، دشتزانم لسر آرق دلی لزبهی ایشاوه، حزبیشنیم حکمم حکم با تیر اوی سرد بخواتهوه. قصه که لبین خومان دابه، پی امواب و هرکس سیداله کومونیستم، ملائکه تیه که و اخلاق و آکاری باشی و تبرو، عیب دا چایو منده هبه لکومونیز دانیه. لسفرکای بخاریست، توزه فکرم گوره، لدلی خومان و تم، کور درودکن، دزیدکن، بختان بو یک حال دا بستن، دی سندم گود، نه، هر اوانه عراق و سور یوان، کومونیستی دی که زور باشن، با طیبتی کیجا ترککی لبخاریز دیتم زوری کار لیا کردم، لسر کشتی لیدیا بو یکم جار با عشق را خوم کافر کردو، شعر یکم لسر شویکان عراق دانا، لتر بس پیش لجر نوی شویگ لزندن بورگلی یکم لروسی اخرد، اوی زور دپرده دا، چو نه هیڅ له حالي خالی کول نه پرسن لابهګده شرکان سرکشتي شم بممستاني پرتيخونده وکچا پیپکن قبول نه کړد ګوتيان او بڤيا بلهمور رځیان ګوت را دې بخواشته شي خوشا اتر له خالد بغده شو لو دو دلم لکومونیست عرب رجبوبو هر دم ګوت او انل ري راس لا يانداوه خلاصہ نیو ورډیک کبار زانی هته پارتی زندو بووه لیکم یکم کوبونوې پارتی دا برزنی حمزه و در نو برایم احمد کرا رازدار حزب و اتا سکرتیر حمزه ژ بپن و رغل شعیان کوت د بیا وجب زانی لوچانساله د کمن العراق بوم هر کس یې هر کارې خراب له پارتی در با شعیه به حرمته وریاندګرد پارتیش بو شعیه در کړو هروابو وابه کله سوري هاتی نو دگل زبیحي به تاوي کر من پارتی د زبیحوتی پارتی د له حجر د لوانی سرپرستی لاوانی پارتی و تن نایکم کاسپی د یاریدش یاری دج د لگرانویس مکرانی جانی ګرانه وې سې گذشته ځان خويده لوکاتی کډګرته برابر دوه هندګ لا خیالات کان اللي یو عدد وزیتو دګرته بو لوی جګه له دوه ډاکټرو پیاو خمو ډاکټرو پرستارو خدمتکاري تر جنبون ډاکټری کې جن بناوین نکولایفنا بسر چن وتا غ یک را د گیشت کمونیچک لنخوشه کانی بوم ساعت 6 او 3 چارکی بیانی د چینه ورزش ساعت 12 برچایي ساعت 2 انزنی ورجا ساعت 6 شیو اتر تمبلو برلا دستم کيرد بروسی خندن لکټیب من دالان جنې ک ډاکټری منالن بو با استراحت هات بو اسایشګه خوی کرده ما مستامو به هزار زحمت شتیکیتی دگه اندم. روژانه پتر دو ساعت خوی دگل مندوده کردم. دیگوت دو کرم هبو خوشکم خوش کم کری لشر دا کجره و تنیا مایه و کرای که خونده بو یستا کرای چهه و میرد. تلفزیون و پیانو دگل اکسی که گوری بالانومه مرشال کتازوف لسالون بو سینما شبو حوطه چور فیلمی نیشانه ده. تازستان بو ورزشی زور خوشیان سمای سرسحال بو. لپاش برچای تا شلده بون لبردنگی صفحه میوزیکی خوش سرگرمی امبازیه بون. بایدالیم بونو نالیم بوین چونکه که هوال جار کوشی بنچرخم ساز کردو چون سر میدانی سهول. تختی پشتم عرضی ماز کردو درینگه لسر موحاد. ایتر تازه هر لدوره و تماشام ده کردن. هر روز که گیم می گردیم بالتوی که تابه تی دوبار کاششی که نا با کولکم پیبو کل بغداد با سرمای سخت مکریبون و تیان آوانه بخار نیان پتی نیکندامه، لکن خدا در نبیل چهار و پنج کیلو خورستربو بالتوی که استر حالی نگرد کره که عربی بغدادشیل بود بنابر اسکر ال عابی روزی پیک ول سری سرمای سخت حال وستابون هوا بر روالت زر خوش بود. دیتم هر دوغه چې اسکر وګ بې یوزان چورتمین شتکردبی خوینه لې حاتو منوتم اسکر او یو یت بو برینداره د ستیله دا کرد دغه هیڅ نه دیشه ګوتيان هرکزستانو بفرنامه دشتی دورو برمان که هموشی جنگالی جغور بو بهشت بو به همو در همو سرین لعاسمانه درو دشت در مال لوانوشو سویسنی زردو سورو گولی همارنگا بلان پیم سیر بو او همو گولا جوانانا جگا لیا سمنو تنیا گولای که طاپی سوری آگری رنگ که اویش دستین بو بانیان ناده کتیر سره بیانو یوارن پاش شی خواردن تا د لناو جنگل او د دګراینو خوشمن را ده بوډ زوربای ایوانیل آسایجابون کلامه نزیق بسټو کی جولاو نیوان سالو پیربون همو زور تیارو سازو انجلک جوان بون. دبو به ماشینی خو و دهات نه بیان بنو سردانی مال روجیک لا کوریک شورا ناوم پرسی اریکا کا یره پیکنی غوتی نا بلعم کا سکار محترمہ کان لیرن لن زیک مانا و کمپیکی من دالانی پیشن حبو نزیکي 200 مندال لنیوان 8 سالو د سالی تدابو چن مامسته کی جنین بسر را د گئیشت بلعم همو کرد به بدست منالان پیکبی اویش هر دو ساعتی شو یان روز دو مندال لبر پاسون بولا خواستن و چون ورزش او جمنان و خوتن مندالی شیپورجان شیپوری لعده هن مدلیک ولایتیان خیلی نداخرد و کوشی هموانیان واکس دکرد چاشتیان لدنه همو مدل فری همو کاریک دبن. چنان هر آمرجگاری کردنو فکر کنی کاریم نصبو. جمهوریتی چکالا بدستی مدلانی چکالا برای وداشو بنورا ل مجلسی سرکاتی دا بج در دبن. او پری تکوزیو نظم و ترتیبیان هبو. لساعت یازده روز و برنامه برنملا جگ خوان لچم راجه دیم چکاله یک دگل کولیشگه کی هاو کم پی بو دی گوت تو پکم تو با اود داداو چون بردی؟ اویش حاشای دکرد که زوری به هد گوتی بشرفی پیشنگیم من ختم نبوا که جوالا گوتی بسیا باورم کرد دستان کردم لیکه او اشت بو نوا لوچانی هاوینه دا منالانی پیشنگ اوان راد بواردو دهات نکم پی هاوینی لدشت دورتر یک لئمه چندین قصری هایو نهواری کریکاران ها بون که منجی مرخصی لدشتیان راده بوارد سی اکی مخارج لسر کریکارو دو باش لسی باشی یکی تیکی شیرو گوشدگاو ماسی زور بون که خواردن زوړ لخواردنی با شي کوردستان باقیان شو پیپیز بو بلنده انګود زوړ لغوشت کیسل حز دکن جګرو مشروب لنو اسایښګه ممنوع بلام لدری اسایښګه مشروب قیدی نه نو نو اجازه ادره شو لجنګل تادرنګ دست جمعی بی گذرنین 20 تا 30 کس هر کس افاری کیده خوړنو خوړنوي پد کړدرا لجنګل دا او ریاند کړدو ل دور ریاند بوړت لخوار اخوار و چمی موسکو بو کلخوزه کیخوغه کساد مالک دبو لو بری چمبو شیواه بو, بو کوملک دچوینه اوی لبیر مشویق دو کیچ چونه بردر کی مالک گوتین یاسمین من په پی فروشه پیرمیردی کی ریدریر به دارور راوینان ک نه فروشم بمیان وټ بو من بکره بر روسا لتو پتکه خوم دا و یاسمین کابرا باوشی کی با هرچی خردم پولین کابرای پیره پیو پیویتم تو غریبی، تو غریبی، میوانی، من یاسمی نفروشم، پیم جوانا، بو تو دی بخشم پیو حق بله، اوانده من روز دیتن هیچ وقت خلقی اوروپا و بطیبتی المانی و فرانسی ناچن کل راست غریبان زورب دعیو لودبرزن، لاده روز وک لاده کوردستان میوان رادگرن، بانشی ناسن أخلاق يانم زور كيف جرت زور دل رحم و بروحم بون هشت جنوكيش لدوري داريك هالا بون دان روانيا هيلانيك وتم؟ او خبر چيا؟ واتين او جوشكا لهيلانا وكوتوا دار زور برزا چوني برينو اللايدايكي؟ منشواتم جوشكي قلة سابوني بدفاري سابون دز فريدن تكرا بتوريي گل يان کر واتين تو انساني داشلن شاعيري څخه نتوانی هیند زالمی غوتم بچن ټلیفون شي بانک بوتن سر د خاتو او نشوتيان ای افرین فکری چاکا طالق سنخوشه كانت کردوا لنو لري وردا زور لو زور ظلم دد پیر بو بونن کشنو مال غوتيان خلق بیازده د درونو جې دیلن تازستان اس کو مانګای جنگل لی بلورینو لسرمان نمرن روژیک لزستان ده همو خلکی کولخازه کا پیرو لاویان هر یکه هیلانی چې ل تخته دروز کراوین دینه ل سرو دارانین دادکته تا اگر بالدار ل گرمین هات نوا هیلانیان سازبه او زور فرق دی گل خلکی لادی لبننه بو کلو همو باغو دارستانه قدنگ تیریک نه هات همو یاند کوشتن تننه چاد لبنانی چې باغوانم ل روزنامه ده خند و کچوبو لسوارتوکی عراق با باغی پادشا رابگا نوسیبوی او عراقیان اوانده احمقن لقلق لسربانی مالان هیلانه کردوو نیخون. من میوان یک بویم لخارجی موسکو، تنیا کلخوز یکم دادی که پاژ یکی زور بچوک لگل یکی 250 سات و پنجا ملونی بو. دشزانیم که پیش انقلاب روسیا لحان دولتانی اوروپا و امریکاوه زور لپاش بو. تازش ببرینداری لشهر هیتلر رزگاری بو بو، خریکی سازکرنوی ویرانو حمدانان لسر برینکانی بو، او کلخوزش علمان جگر لجه ناقوسی کلساقی خاپوریان کرده بو، سرلنوی دروست کرده بو، سنگری علمانانی هر لیه ما بو، دیارمن ناتوانموک پیویسته بسی حال خوشی و نخوشی خلکی او دولتگوری بکم، جامع گر درو دروست کم، یان بی خبر وک شیعه اکانی عراق مل لفرو فیشال نیمو کیت بکم بگا یان یعن امریکا کیت بکم بگا. یان وک امریکا پرستکن با باشکش یعن بلم خراب. تمیانی از من او روژه کدبه تا بیست و پیان سال لما برک سالی 1959 او کمیدیو ما باسی کم. حزیج دکم کابره نبین کده گود لولاتی کومونیستی همو هفته باران با توتن دباره. یان لا منو ابي هر اعلان دولتی کومونیستی کرا دزبج شي روحنګيون ل اسمن را درجه دبی بزانین ولاته فقیر کراجه می ګوره د او فقیر زور مندوبن ورده ورده حالی خویان خوشکن کس لपरे مناسبه کره مل مصطفی کتازه ل روسیا هات بووه در باری جیانی ولات روسیان له د پرسی جاره وتی حال غونشینکان دشت هولیر له حال د هرغو نه دی ویز دروپکا شویې پارټی لچې نه حل د قرچندو د انګود هرې لپاره نه کړو ته هیڅ لته ناګه بېز نګلې کی کوم ګرانې کې زور لکل خو زو هر ګونډي یک بیوې بو انجرامو ک هر ګونډي یک بیوې منګه راګره د به ل دولت روژ او اندشیر اوندرون بدا مانگا او جولک ساغ بن اگر به مرنده به شیاهتی دکتور یان لسربې کبه فلانه خو شیفه او تاون د به سال او اندش گوشت بدا اگر مانگا او جولک سر نه بره گوشت لچی پیدا دبه د به بازار بیکریو بیدا به کربلستی کلخوس انق سانم لغیر بیست راست یاندرو و بال بس توین بلم خوم روژک لسرب ګولاویک شش مراويم دیت پیو بو متم د کاسبنی د راوی هیڅ زحمت نی اگر زورت رات راګر تباباش تربو سره کی له راو شند او تی بیره بدس اونه شپه وبو ام ده هرکی لیم دستانین هیڅ بو نمنی جا اگر اوشتان روبدن دیره حال ایوان له کوردستان حیوان بدوخه ور دگرن خوشتر دکانک لنزیک دروازه اسایش غابو خلکی کلخوزکه دهتن سفین تماشین له موسکو نانی دهنه او صاحب نانی ناني خوان دا کري بو خلقه قند بو خوان ارد نا کنننن روش یک لیک اکم برسي زوی اگر تر و قريبه لوانه ماشین بچاقه او خلقه بو نان چه دکن؟ قط ماشین نا چاقه و نانيش هرده روشنامم لبغداو بو هاتبو لاتحاد شعب وارغان حزب كومونيستي العراق لشوين اگدانو سرابو خانواده ورزيران لروسيا لزحمتی چشتو نان کردن و قابشتن رزگار بون هموشت اوتوماتیکا زنجک لیده دا فلان خواردن بنیره صفری یک دیتا میز را دخری قابشی وکان بشوین یک دا ریز پاش نان خواردن زنگ لیده دریتاوا و زرف سربخو دستنو و مرکزی گند لوی دشورین باور کلو دمدا دا که امم دخوین دوا صفی نان کرن صدان میتر لدیاری دوکان وستابون استابون تا من ذکر یوګرانی و خوشیوستو حورایان دنیاک تیب لری دوبم شویا دین کوتای بشی چلونوی خوین نویک تیب جیانتان شادو كامران بن